مرحوم علامه تبا تبایی رضوان الله تعالی علیه خب واقعا در اخلاقیات خیلی کار کرده شهرت علامه تبا به جنبه های ایشون تفسیر قرآن کریم تدریس فلسفه استاد فلسفه است ولی به مراتب اونایی که با مرحوم علامه بودن و آشنایی با روحیات ایشون دارن میدونن که چند برابر نسبت به تفسیر قرآن که نوشته و کتابای فلسفی که داره و تدریس کرده ایشون تو بحث اخلاقی خودسازیا کرده و خودشون هم برای شاگرداشون نقل کردن و نوشتن که وقتی وارد حوزه علمیه نجف شدم برای ادامه تحصیل اساسیم رو توی حجره گذاشتم بدون مکس صاف رفتم حرم مولا امیر المؤمنی. زیارت کردم و روبروی ذریع ایستادم گفتم یا علی من اومدم نجف میخوام درس بخونم مخوام عالم بشم میخوام دستم رو بگیرید و من عمرم اینجا زایه نشه یه چیزی به من بدید از اینجا برم رضا من از زیر نظر خودتون بگیرید کمکم کنید میگه این رو گفتم یک معلمی استادی که شما قبول دارید سر رام قرار بدید منو تعلیم بده. خب از راه رسیده بودم و خسته با مانده بالا رفته بودم حرم خیلی طول ندادم برگشتم اومدم حجره اونقدر خسته بودم فرصت این که بساط حجره رو کاملا پهن کنم نداشتم. یه حسیره که پهن کردم دراز کشیدم که رفع خستگی کنم بعد پاشم حجره مرتب کنم. دیدم در حجره ای منو باز کرد اومد تو پاش شدم برمج میزنی آقای قاضزی. گفت ها اومد تو گفت که خوش اومدی آشون. اومدی نجفت. از مولا کمک خواستی که عالم بشی بری، عالم شدن تنها به درد نمیخوره باد آدم بشی بری. اینجا از مولا بخواه هم عالم بشی هم آدم. خب دامنش رو گرفتم. گفتم ولد نمی کنم من از مولا خواستم که بفرست شما رو فرستاده. شد شاگرد حاج میظلی آقا که اون وقت اون مراحلی رو علامه طباطبایی تیک کرد که به کجاها رسید. توی جلسه ای از مرحوم علامه طباطبایی سوال شد که استاد اگر ما بخوایم کتاب اخلاقی مطالعه کنیم به نظر شما بهترین کدومه ایشون فرمودن این هشت جلد محجت البیزای ملا محسن فیضو بخونید